اینجا چه خبر است؟ یک برنامه کوهنوردی است. کوهنوردی؟ بله، یک تفریح جالب. هر کس دوست دارد بیاید. اسمش را اینجا بنویسد. این برنامه چه روزی است؟ صبح زود. تو به کوهنوردی علاقه داری؟ بله، خیلی. رامین و سعید هم به کوهنوردی میروند. آه چه جالب. تو نمیروی؟ چرا؟ من هم میروم. ما پنجشنبه صبح زود به کوه می رویم و پنجشنبه شب برمیگردیم. خوب است. تو هم با ما بیا. خیلی خوش میگذرد. همه دوستان ما می آید. سعی می کنم امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم.